خبر فیصلی کار محفل نشات میطلبید تلبید و عباس خان دست به دامن سید شد تا مجلس شادمانی را علم کند. با خمیشه پهنه چمنی بود و باریکه آبی و زخمه ستاری و حضور زنی. البته با سرپناه یا فرشی که زیرانداز باشد و لحافی که پوش. زن با صدای دورگی دود خردش کنون چه شده که بیخبری به جان جانب ما نمی و بازوها را از خود دور می گرفت دستها را از مچ به پایین شل می داد و آهنگ زنکهایی را که به انگشت میانه و شست داشت امتحان می گرد جرم جرم جرم جرم, جرم. داشت سازش را کوک می کرد سید سر پله نشسته بود و دل و را به سیخ می کشید عباس خان هنوز نیامده بود زن گویی برای خودش می خاند. مرا گفتی چون من یاری نداری، تو همچون من گرفتاری نداری، چه دانی حال زار بیدلان را که بر دل داغ دلداری نداری، چرین، چرین، چرین، چرین، کمانچکش در حال کوک کردن به زن گفت برو لباس تو عوض کن حالا میرسی زن زنکار از زنگوشتانش باز کرد و بخشش به ته اتاق رفت و به کمانچکش گفت تو بخوایی همیشه با همین چوخا بشینی؟ کمانچکش خندهی کرد شبه اتسه ب من دارم مثل خایه حلاج می‌لرزم لرزم، سردنه، باد پایستو حباس. سن چادر و روسری را از گرفت و از داخل بخچه یل چسبانی را که به رنگ ارقبان بود و دور یقه و آستینش گلابتون دوزی شده بود در آورد و بر کرد و شلوار سیاه گشادی را که دم پایش کشتاش پوشید و رویش شلیته گلداری که هاشگش پولت دوزی شده بود و آمد و رو روبروی مطرب ایستاد. این نور چراغ لامپا بر پولکای شلیته سایه و روشن می شود. کف دو دست زن از هنا یک پارچه نارنجی بود و صورتش از سرخاب یک دست پشتگلی، جز سالک برراغش که میان دو ابرو و زیر خط گیسو نشسته بود. سید سیخای کباب را آماده کرده بود و حالا در حال افسودن سبزی و پنیر به سینی عرق بود و در استکانها آب بگردان. زن باز شروع به زمزمه کرد، ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، کمانچه کش هم به خواندن افتاد، حبیبم، زن ادامه داد، جان نسارش کن و نگذار که مهمان برود، کمانچه کش تکرار کرد، برود، و نقمه چند و بم از کمانچه بیرون داد، عباس خان که وارد شد زن رو به مطرب و پشت به او داشت، و سید مشغول بیرون کشیدن چوب پنبه از سر بطری ها بود، همانچکش به دیدن عباس خان از جا بلند شد و سلام کرد و سید بطی را زمین گذاشت و به به خان خانان سرف بستان چشم ما و دستفیک شد زن همانطور که آماده برای بشکن زدن دستها را بالای سر گرفته بود به طرف عباس خان برگشت که با و گشادی آماده جواب گفتن به سید بود از دیدن زن خنده‌ای که بر صورت عباس خان پن شده بود جمع شد و بی اختیار گفت سید خانمه ماه پیسونی رو از کجا کیا ودی؟ سید گفت افیفه است اون که میبینی داغ مهر خان خان صداش میزنن اسمت محری زن را رو داد و کمانگش دوباره با صدایی که بعد سمیمان خندید پیچه عباس خان بیان که آبی از دهان بپراند چند بار بارست گفتد زشتی سالک زن را از این پاک کند و استکان عرقی را کسیت به دستش داد، لا جرع سر کشید و همانجا کنار بطر مشروب و گلاسا نشست. زن ناگهان بشکنهای پرسدایی زد به خوندن تصریف شاد برداخت. چوقک فست زمستون میزنه جیکجیک جیک مستون، بشکن بشکن والا، بشکن بشکن بلا، اینجا بشکنم یارگله داره، اونجا بشکنم یارگله داره. بعد قیه بلندی کشید لی لی, لی, لی, لی, لی, لی. دست را رو روی لبها داد تا صدا مجفف و لرزان در هوا پیچید کش هم با قیافه جدی همراهی میکرد اینجا بشکنم یارگله داره اونجا و به سرش تکانهای گدایی میداد سید میان داجر خردهیزم و سوخت ریخته بود و سیخار را روی آتش گذاشته بود و باد میزد و بلند بلند با عباس خان صحبت میکرد. طبیب حاضر بود میکرد خانه خانه؟ از یاد آوری نتایج معالجه باز خنده بر صورت عباس خان چه گفت و جواب داد ترش و لش بیالت بوسهه فقط یه مختصه اخش شده بودم اونم یف شد یک گیلاس دیگه بزن سر ببستن که این آب آتشینم می سودونه اما تافیه خالدون عباس خان یک گلاس دیگر عرق را یک جا در دهان خالی کرد و تلخی و آن را با دو پر سبزی پایین داد اونش داشت گرد میشد و سید پرسید عبدالله خان پیداش پیداست نشده سید اول نگاهی تندی به عباس خان کرد ولی زود بر خود مسلط شد و به لحن شوخ مامونش گفت از ورود میر پنج به پایین ممانعت میشه خان خانم اگه قپدار به جمع میاد با قپش کلون باشه بلاوه به قپدار چوسی میان چوسیم مالیات داره عباس خان خندید گفت نایه و عبدالله خوب بادمیه قیعه داماد ما بسی که نسمه هم پیدا کرده گفتم اگه خواست بیایدش باغ اما خیال نکنم پیداش بشه سید به باد زدن ادامه داد زن باز به گوشه اتاق و به سراغ بخشش رفته بود و چند دقیقه ای از دید عباسخان قایب بود حالا با زنگی انگشت دست و خلخالی به دور مچپا برگشت و شروع کرد لیلی رو بردن چال سیلا بیچ براش آوردن بردن دون و سیرا کمانجه کش هم همراهی کرد و دنباله را با او گرفت لیلی گل لیلی خیلی خوشگل لیلی زن بازوها را به پهلوها چسباند و با صدای بمتر خان علا زراه وفا به شیدای خود جفا کم نما که سلطان زلوت ترهم کند به حال گدا ترهم کند به حال گدا سید گفت ضربی بخون اسمت سالکی چه چه بزن یه چیز نخون افف خون که یاد غرزامون بیفتیم زن به جای خاندن به رخصیدن افتاد پیچه تا بدنش نمکیم بود و صدای گرفته و خستهش کشش داشت چرخ که میزد چینهای شلیتش مثل برگ گل به دورش باز میشد و کمر لختش را چون ساخهی در میان میگرفت پولک های گرد دامن با هر دور بالا و پایین میرفت و مثل های جاره بر لبه کاسه گل می درخشید. از زنگوله خلخالش با هر پایی که می کوبید نوای خوش زریفی بر می اگر آن ساله که بد منظر نبود. نگاه عباس خان از شانی زن به ندرت بالاتر می رفت. عباس خان یک پیاله عرق جلوی مطرب گذاشت که با چوخایی که بر به چوپانان می و گفت بخوای گمشی بزن عشق کنی. زنگ را چون ترلانی که توکایی را در هواش شکار کند از زمین برداشت و گفت کار کردن خ خوردن یابو نشد که و سر کشید کمانچکش ادسوار خندید بیچه و اضافه کرد ای سکمسته عباس خان که از تردستی تردستیزم به نشات بیشتر اومد و گفت عجب بلای این سید و استکان خودش را به تحریصان سید گفت آتیش پارز شاهش شادقدان، این مشا چنگ مثل غرقی میزنه و میبره آقاجان عباس اباسخان و پچه پچه مترب و قیه زن در هم پیچید لی لی به ای لی لی لی لی. سید استکانا خالیه. سید گیلاس ها را لبریز کرد و بنده در قوادی کوتاهی نمیکنم خانه خانان و سیخا را زیر رو کرد ابازقان باز چند پر سبزی مزه ی عرقش کرد و مایه را پایین بود زن شروع کرد تو بودی که پارک می ساختی. سردر لاک می میساختی، کفشا رو گیوه کردی خوارات رو بیوه کردی و زنکار رو جرینگ جرینگ به صدا در آورد و رو به سید گفت بابا بو این کباب ما رو کش لا برسون که سلطان زلوت ترخم کند به حال گدا ترخم کند به حال گدا حوای ما رو داشته باش سید, سید گفت تو جی, جی که دستون تو بزن دستی و یک سیخ دنبلان بیژان را کلای نان سنگک از سیخ بدر کرد و نمک پاشید و به دست عباسخان داد عباسخان گفت اول به خانون سید گفت میرسه شمشاد خان شروع کن در رای باز میرسه و سیخهای جگر و قلبه و دل را روی یک نان کامل گذاشت و نان دیگری را بالا پوشش کرد و با دو حرکت دست بار سیخها را میان دل نانها خالی کرد پان را بر سینی جلوی کمانچکش گذاشت و به گفت وقت لهر و لعب رسید افیف خانم لغبه شاهان برات گرفتم بسم الله و زن بلافاصله بر زمین نشست زنگها را از انگشتان باز کرد پاهای خلخالبستهاش را در دو طرف سینی باز کرد و به خوردن و نوشیدن مشغول شد نیم بالاتنه کمانچکش بر سینی خوابید و همانقدر که برای خندیدن دهنش قنچه میماند برای خوردن در بازه میشد چنان به نان و کباب دندان میزد که گویی به جنگشان رفته است. با انگشت لغمه نیم جویده را در گوشه لپ جا میداد و گاز دیگری بر می گرفت و مشت سبزی را در لپ دیگر میتوان. سید دسته بعدی گوشت‌های به سیخ کشیده را روی دجر مستقر کرد و با فوتی میان آتش دمید ولی قبل از آن که به باد زدن بپردازد شیشه های خالی مشروب را به گوشه گذاشت، و به طرف حوز که با سرپناه فاصله چندانی نداشت رفت و یک بطر دیگر عرق از داخل آب بیرون کشید و وسط سینی گذاشت و گفت خوب نوشه جان شد، آن بطر چهارمه و عباسخان گفت باب بخور آقا اندرونت خالیه. خون در رکهای عباسخان جوشان میگشت و در شقیقه هایش میکوبید، سرش به دوار مطبوع افتاده بود و رخوتی داشت که به خوردن رقبت نمیگرد و فقط عرق میطلبید سرداری چوچونجش را از دور شافیان و سر پا از زن پرسید چی میخوندی تو بودی که پایک میشاختی؟ زن با دهن پرگون کفش پولک داره میخوام چار قدمش مشمش میخوام شلوار کش کش نمیخوام سید در خوردن و باد زدن گفت حالا یه سیویلا کفن کردی بیا یه چیز بخواه اسمت خونم زن کنار سینی زرد گرفت و ماشین میخوام ماشین میخوام مطرب با دو لب انباشته به آهنگ ضرب زن ما را به زمین می‌کوبید. بید. عباس خان ایستاده و سر جا چند لحظه مثل منار جنبان تکان کرد. بعد آهسته بر مخده نشست هست دست ها را بیخ گوش برد و شروع به خواندن آبازی کوچه باقی کرد. دلا دلا دلا دی سب چه میکیدی تو دای کو یه حبیب من الاخی. الهی, الهی الهی الهی خون سبیه دل تو هم گستی یقیب من دلا سه به به سند اشقه عباس خان از نشور کرد دلا ولی پیشتر نه رفت صدا در گلو گره خود زن دستها را ابتدا بر نان و بعد برچلید مالید به مختصری از سینی فاصله گرفت با چهچه خواند دوش در آغوشم آمد آن مه نخشب کاش که هرگز سهر نمی آن شب هست به سرتا هوای کعبه مقصود کوشش راکب خوشست و جنبش مرکب دلی دلی آی دلی دله مطرب هم تن راز روی سینی برداشت و کمانچه را به دست گرفت و سوزناک از آن بیرون داد و لغمه زد زن در بطری عرق را باز کرد و در همه پیاله ها عرق ریخت و گفت به سلامت که خانه زنده باشید و پیاله را خالی کرد و به گفت کش گفت بلی بیاد عباس خان دیگر به سالک زن فکر می کرد گفت بهی سید بهیز می خوام به خونم الا ای مایه گیلاس را در خفره دهن ریخت و گرگره را سرد دلالا الهی سر بار بالش گذاشت گفت من من بدبخ شدم سید من میحیم شد سید گفت نه شاهش تمشاد قدان نس در بستان نه فقط افراد نابالغ یتیم میشن نه ابوسخوان به حفه گفت هولئ ابو اسکندر تو یا امین لویا سید گفت مگه برای همه خبر صد امشم سور و سرور به رانی نیست شمشاد خان عباس خان زهاب میزاد من خیلی, خیلی مستم قیم مستم. سید گفت من خواهر مستی رو که خودش بگه مستم میگم خانه خانا تشکه چی پشمه چی سر به بستان عباس گفت هم هم همین یو جای سال بابا میعیوشی شمسیم سگفت اوه اوه اوه اوه سید زیر بازوی عباس خان رو گرفت و وقتش رسیده که بریم هواخوری خوری خانه خانان از و عروسی که اختلاط بکنه موقع بیرون رفتن و خوردن سر بگستن و هر داز اتاقک بیرون رفتن سید از پایین پلا یکی کبابا و دریا به آتیش در حال زواله همان مدتی که عباس خان کنار پاشویه حوز بالا می آورد سید مشت مشت آب می‌ریخت که کسافات برود مهده که نیمه خالی شد عباس خان از آب پرخاکشی رو حوز مشتی بر صورت زد و گفت ای توف توف، این آب پو پوی خشخاشی. سه گفت بله حضرت خان اینجا آبش خشخاش گیزه عباس خان تلوتلو تلو خوران از جا بلند شد و نگاهی به آب کدر حوز انداخت که تکه های جلوزق تیره ترش کرده بود و عکس ماه را دید که بر اثر تلاتم آب در حال کش و غوز بود و دست به طرفش دراز کرد سید از پشت پیراهنش را از ولی سرگردن عباس خان یک بار در آب قوطه خورد و با تکهی خزه از حوض بیرون آمد عباس خان را سید بر سنگی نشاند و در تمام مدتی که با متخالی سر و رویش را خوش کرد عباس خان به توف, توف ادامه داد مستی کم و بیش از سر عباس خان پریده بود ولی نه تعادل راه رفتنش را بازی یافته بود نه بر حرف زدنش داشت کلت زبانیش تشدید شده بود و لکنت هم بران مزید بود مدتها بعد از آنکه سید به اتاق برگشت عباس خان بر سر سنگ باند از داخل صدای زن بلند بود که میخواند گریه را به مستی بهانه کردم شکتها دست زمانه کردم دلا خموشی چرا چخم نجوشی چرا بارون شد از پرده راست تو پرده پوشی چرا بلاخره مورمور سرما عباس خان را از جا بلند و روانه کرد در اتاق دوستان هنوز سرگرم خوردن و نوشیدن بودند سید گفت به و خان خانان شاه شمشا قدان زن گفت به سلامتی خودم و خودم زنده باشی استکان را سرکشید همان کش سرداری چوچونچه را با پچه پچه بر روی شانهای عباس خان انداخت و گفت خوب سرده نچه و منم دارم مثل خواهی حلاش سید لغمه به دست اجابر خواست و تحمانده آتش میان دو آجر را با یک تکه هیزم پخش کرد و جرقه ها را زیر ضربات هیزم گرفت تا دیگر نوری از تحمانده چوب ها ساته نبود. ایستاده بقیه لغمه را خورد و گیلاس عرقش را به تهرسان و به عباس گفت امشب ایشو و کردیم خان هفته دیگه قهوه خونه لالزار نمایش باز در خدمتی تا به طرف عباس خان خم شد و کیش پولش را از جیب سرداری بیرون آورد و به نجوا گفت من حق و حساب مطرب و خانم خانمو بدم و بریم. عباس خان سر جنباند و به نشانه تمرکز حواس زر لبی گفت ما پیشونی. باغ در حوالی امامزاده داوود بود و عبور از قسمت کوه و کمر آن فقط با قاطر میسر بود. عباس خان حوشدار از آن بود که بیوا واهمه سوار قاطر شود. و مستر از آنکه که بر قاطر استوار بنشیند. سیدو را ترک قاطر خود نشاند و عصای چوب و آبنوسش را در دامن گرفت و قاطر را هی کرد. عباس خان تمام راه دست را به دور کمر سید حلقه داشت. سرش از عرق و میدرش از آشوب سنگین بود. چشمانش به سوم استر که در باریکه راه میان کتل و دره در از قلب سنگ بر قلب سنگ فرود می زیاهی سیاهی می رفت. ظلمت شب و صورت شراب، سختی صخره و عمق دره را در دیدش صد چندان کرده بود، یکی قلعی تسخیر ناپذیر بود و دیگری سیاه چالی بیفقن، حجمها و رنگها همه بعدی غیر باقعی داشت، هر پار سنگی که از زیر پای قاتر میجهید جهید، بر ملاج او خود، هر جرقی که از زیر سم حیوان می پرید، نه سنگ آتش زنه که آتش فشانی می نمود. سایه کوه بر دلش نشسته بود و صدای سید در سکوت شب و انعکاس سوت قدم های قاطر و تنین چوب خرکجی آهنگی غریبه داشت. جاده مال رو رو به اتمام شمشاد بستان بقیه را به درشگه میری. در درشگه عباسخان به خواب رفت و وقتی مقابل دروازه خانه سید بیدارش کرد، چشمها را با حیرت گشود به اطراف نگاه کرد به ساعت و زنجیرش دست کشید، عصای سرنقره را به دو دست چسبید و با صدایی آلوده به خواب نیمه سیر و خراش گلو به سید گفت بعد از این نه سی آقا نه امام داوود داود کردی. باخت و این شب از درشگه پیاده شد دو قدم نرفته برگشت و خواست به ماه پیشانی اشارهی بکند ولی بزاغ دهنش چنان ته کشیده بود یا تو نتابانه از توفی خوشک